رحمان رحیم بزاری صحبتم رو با تهحی یک سوال شروع کنم که شما خصسته یهومم بیشتر در بره تصور کنید که ما از اینجا که موزه کار باری خرام کرد به روی شما منو خراب کرد خب خب بذارید صحبتام با طرح یک سوال شروع کنم تصور کنید ما از اینجا که موزه ملی ایرانه میخوایم بریم به برج میلاد تهران برای یک قرار ملاقات راهای متفاوتی وجود داره ماشین مترو فکر میکنین چند راه متفاوت، چند مسیر مختلف، چند آپشن متفاوت وجود داره که ما رو میتونه ببره از اینجا موزه ملی ایران به مروج میلاد تهران اونایی که فکر میکنن بالغ بر پنج راه متفاوت، پنج اولترنتیف، پنج آپشن مختلف هست دستو چون رو بیارم بالا؟ خب، اونایی که فکر میکنن بالغ بر 15 دستان رو بالا نگه انها اصلا نمونه نیکن. اونایی که فکر کنن بالغ بر 15 مسیر متفاوت و آپشن مختلف هست، دستا بالا نگه داشتن، بقیه بندازن. اونایی که فکر میکنن حالا بالغ بر 50 مسیر و آپشن متفاوت هست، که ما رو از اینجا به برج میلاد میبره، دستور رو بالا نگرفتن، بقیه بندازن. خب هنوز هستی اصلا مشخص نشه. اونایی که فکر میکنن بالغ بر 500 مسیر متفاوت وجود داره، دستور رو بالا نگرفتن، بقیه بندازن. خب بله بفهمید. ماشات داره دیگه اولینو چوسه اپشن نه نه دیگه اصلا اینا دیگه همین همین بود یه اونفری بشه دیگه خیلی واو والا میشه خب که میونه باله بر 500 مسیر هست دستور رو بالا نگه دارن خب اونایی که دستاشون بالاست خیلی یعنی پو... اعتماد به نفسشون زیاده ولی کاملا درسته من یک حساب سرانگشتی کردم بیا منو نگاه کردم باله بر 10 توانه 6 یعنی یک میلیون مسیر و راه متفاوت هست که ما رو از اینجا میبره به برج میلاد یک میلیون تصمیم گیری، یک میلیون آپشن، یک میلیون اولترنتیف کدومش برای ما بهتریه؟ کدوم مسیر برای مناسب مناسبترین مسیر؟ این تلنگور اول تلنگور دوم حالا یه چیزی هم میخوام قبلش بگم اینکه انقدر برای رفتن از موزه ملی ایران به بورج میلاد انقدر های متفا است بالا یک میلیون راه یک میلیون مسیر آپشن وجود داره. این نمونه کوچیکی است از پیچیدگی دنیای ما این آیا مدننی چیزی که بلنی از دستی خراب باششه. یک نمونه کوچیکی است از پیچیدگی دنیای ما. ما از صبح که بلند میشیم تا شب که میخوایم بخوابیم با میلیون ها میلیون آپشن. میلیون ها میلیون راه متفاوت رو برو رو هستیم در همه ی زندگی ما هر تصمیم گیری که ما بخوایم بکنیم با هزاران هزار راه از صبح که بلند تا شب میخوایم بخوایم کدوم مسیر، کدوم راه، کدوم آپشن بهترینه تلنگور اینجاست، تلنگور دوم ما چیزی به نام بهترین، مناسبترین، کاملترین نداریم ما خوبترین مطلق نداریم بحثهای عقیدتی مذهبی به کنار توی بحثهای روزمره توی تصمیم گیریهای روزمره ما چیز نمونه مناسب ترین نداریم. ما افراد جامعه متفاوتیم. نیاز نیازهامون متفاوته علایقمون متفاوته سیستم فکریمون متفاوته در نتیجه مناسب ترین هم متفاوته بگیریم به مثال برج میلاد اینکه کدوم مسیر برای شما بهترین مسیره بستگی داره به نیاز شما به علاقه شما مثلا اگر قرار من از اینجا برم برج میلاد و بعد توی راه یک مقاله بخونم شاید دیگه راننده یکی از آپشن‌های من نباشه من بعد با مترو برم که از اول خط مقاله مقالهامو بخونم اگر من بخوام سر راه مثلا شیرینی بگیرم یا گل بگیرم دیگه شاید اصلا با مترو رفت شاید مجبورم تاکسی عوض کنم با بی آر تی برن و و و پس اینکه بهترین مسیر و مناسبترین مسیر برای من از رفتن از سمت از موزه ملی را به برج میلاد تهران اینکه کدوم مسیر بهترینه بستگی به نیاز من داره به سیستم فکری من داره. ظاهرا انسان ها ما افراد جامعه داریم به سمتی میریم و باید به سمتی بریم که بهترین ها رو برای خودمون انتخاب کنیم. جهان اصلا قهرن به سمتی میره که همه چی میشه درباره من به قول انگلیسی یا all about me. خونه من، ماشین من، نوع دکوراسیون من، میزان حقوق من، تفریح کردن من، همیشه در داره پرسونالایز میشه. چرا چون نیاز های افراد متفاوته، چون سیستم فکری افراد متفاوته در نتیجه بهترین های ما متفاوت میشه خب، عمر ما پوتاهه، 60، 70، 80 سال برای هر بودی از زندگیمون، هر تصمیمی استاده ما با میلیون ها میلیون آکشن ترفیم و بعد هم برای انتخاب بهترین ها و اون بهترین رو برای خودمون انتخاب کنیم چی کار کنیم؟ ما قطعاً برای که بتونیم از زندگی اون لذت ببریم زندگی راحت و آسونی داشته باشیم باید بریم به سمت بهین سازی تصمیماتمون، به سمت بهین سازی انتخاب هام که از میلیون ها میلیون آپشن اون بهترین ها رو برای خودمون انتخاب کنیم این درس اول نکته اول نکته دوم، حالا چجوری این بهین سازی رو انجام بدیم؟ چجوری بهترین ها رو برای خودمون انتخاب کنیم؟ یک راهی وجود داره که ما بشینیم دونه بدون این آشن ها رو بررسی کنیم آزمایش رو خطاهه بریم امتحان کنیم مثلا ازجم همه روها همه مسیر رو برژی میلاددار همه شری فروشی ها رو یه, یه شیرین از همشون بگیرم ببینم کدومشون بهتره شما دنباله به این سازی هستیم دیگه میخوان بهترین مسیر رو پیدا کنیم و بهترین از بهترین شری فروشی بهترین شیرینی رو بخریم و مثلا مقادن هم هم بتونم. راه راهدل من همه این رو برم امتحان کنم شیرین فروشی رو امتحان کنم بعد برگردم تست کنم انتخاب کنم. این امکان پذیر هست و انسان هم موجود باهوشیه و اگر بهش زمان کافی داده بشه همه این کارها رو میتونه انجام بده ولی برای تصمیم گیری برای بهینه سازی زندگی حدودا 60 ساله ما چیزی معادل به عمر تمام بشریت رو نیاز داریم میتونید حساب کنیم یه مسیر سالی یک میلیون آپشن هست تازه فقط یه آمد رفتن بود چجور ما بهینه سازی کنیم؟ ما زمان نداریم انسان باهوشه ولی زمان نداره ما زمان نداریم ولی یک چیزی داریم که قبلا نداشتیم حد به این شکل نداشتیم اون چیه؟ ما اطلاعات داریم ما داده داریم با چند تا کلیک دسترسی داریم به هزاران هزار آیتم داده به داده ای آیتم اطلاعات باز برگرمی مثال خودم رفتن به برج میلاد ما با چند تا کلیک میتونیم بدونیم مثلا ساعت اوپنیاورزا ساعتهای شروع کار گل ها یا شیلین فروشی ها چه ساعتیه؟ قیمتون چه جوریه؟ اگه سرها می‌خوام رستوران غذا بخوریم میتونیم بفهمیم کدوم رستوران کی بازه؟ کیفیت غذاش چجوری؟ سیستم ریویو داریم آنلاین، کدوم رستوران برای کدوم غذا بهتره؟ اینو رو قبلاً نداشتیم. قبلاً ما آزمون و خطا می‌کردیم، ولی الان دیگه نیاز نداریم، وقتش هم نداریم. ما الان داریم. همه که زمان طلاست. و نفت هم طلای سیال هست من امروز میخوام یه طلای سومی هم به بچبریمون اضافه کنم. به اون هم اطلاعاته. اطلاعات تلای اطلاعات طلای دیجیتال، اطلاعات طلای قرم و زمان دیجیتال ما به اطلاعات همه کاری میتونیم بکنیم. داشتن اطلاعات زندگی ما کم هزینه، آرام، پر و لذت و میشه در همه عادش هر چیزی که شما میتونید فکر بکنید. اون سخران بزرگی که من صحبت کردن، و همه احترامی که براشون قائلم همشون میتونن من به چالش بکشم که همشون برای موفقیت کارشون نیاز به اطلاعات دارن اطلاعات فراوان تن کاری که ما بکنیم اینه که بتونیم این اطلاعاتو تجزیه تحلیل بکنیم و اینقدر این اطلاعات مهمه و اینقدر این طلا این طلای دیجیتال مهمه که چند سالی هست علمی به نام علوم داده دیتا ساینس معرفی شده البته قبلا به اسامی دیگه بوده رو دیتا ماینینگ بوده و باز دیگه ولی به این شکل حدود سه چهار ساله یک علم جدیدی معرفی شده با یه ساختار جدید، با یه ستراکچر جدید به نام علوم داده، دیتا ساینس و انترپونرها، سرمایه گذارها، سیاست همدارها، متخصصین، بیزنسها دارن میلیون‌ها میلیون دلار و پوند خرج میکنن تا از این اطلاعات استفاده کنند. اطلاعات تلای دیژیتاله مگه بتونم همین امروز جا بیندازم برای خودم و, و می‌کنم. استفاده از اطلاعات ما از روز از صبح بلند میشیم تا شب که بخوامیم دائما در حال گرفتن داده و اطلاعات و همچنین درست کردن و پخش اطلاعات هستیم همین موبایل هم و اپلیکشن که رو موبایل هست که حالا وقت نیست ما میخوام بگذارم اطلاعات حالا اینکه دیتا ساینس چی هست و داده چی هست مختلف داره یه بخش مهمه شیستی دستمان های یادگیری ماشینی، ماشین لرنینگ که حالا اون ها مدل های مختلف داری regression techniques هست neural network هست و decision trees هست و حالا چیزایی دیگه ولی نکنه که مدل هستن که انسان به اونا داده میده مدل های کامپیوتری و ولی این مدل ها میان پترنیابی میکنن مثلا دو تا شرکت بزرگ دو تا فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در انگلیس به نام سینزبری و تسکو اینها سالیانه میلیون‌ها میلیون پوند دارن خرج می‌کنند اتاق‌های فکری تشکیل دادن که این اتاق‌های فکر توش متخصص دیتا ساینتیست نشسته کارشون گرفتن داده و تحلیل داده است فقط همین و چیکار میکنن از این اطلاعات از این داده‌ها ها اون میان سوددهی شرکت‌ها رو میانن بگیرن اینا میان میزان فروش رو می‌برن مثلا اطلاعات ساده اینکه شما تاریخچه خریدتون چیه؟ از این فروشگاه چه چیزایی کردید؟ بیشتر خریدینو آنلاین هست یا تو شعبه؟ اگه شعبه است از کدوم شعبه؟ این هفته چه خریدی تای؟ یک ماه پیش چه خریدی این ماه سال پیش چه کردیم؟ چرا وقتی میای آنلاین خرید کنی چند تا آیتم سبد شاپینگ رو می اضافه می‌کنی؟ بعد دیگه خرید رو وری اینا رو بررسی می‌کنم، پترن یابی می‌کنم. بعد از خرید اون میان پروداکت و خدمات و سرویس و محصولاتی میدن که فقط مختص به شماست یعنی با نفر بغل دستی اون فرق داره همون آپشن های که بهترین من با بهترین بغل دستیم فرق داره مناسب ترین مسیرم و مناسب ترین مسیر بغل دستیم فرق داره مثلا میان تخفیفی و توی کالایی اینا که میدونه شما می خرید و من خریدار وقتی میبینم این شرکت این فروشگاه داره نیاز منو برطرف میکنه دیگه من نیازی نیست برم شاپینگ باسکتمو پر کنم شب این باسکتمو پر برام میاد من فقط باید پول پرداخت کنم این بایس میشه چی فروش بره بالا کاستمر اتراکشن یعنی جذب مشتری زیاد شه من نگهداری مشتری یعنی سنس کاستمر اتراکشن و کاستمر ریتنشن اینا بره بالا حالا این موضوع یک مثال ساده بود تو زمینه شاپینگ تو حمه آباد کنترل اجتماعی مسائل فرنگی مسائل سیاسی این که کهی کجا جوری رعی بیاره از طریق اطلاعات داده خب این اول من اطلاعات تلاست زندگی ما پیچیده است ما از این اطلاعات به نه بحثان استفاده کنیم برای بهینه سازی، برای کردن بهترین ها، مناسبترین ها، برای خودمون خب، حالا تو بعضی از زمینه ها بعضی از ابعاد زندگی ما، بشر و افکار و جامعه این پیچیدگی ها، این آپشن ها، این یک این مسیر ها بسیار متفاوته بسیار سخته و نه تنها خیلی مهمه بسیار سخته تجزیه تحلیل داده هم نه تنها خیلی مهمه به هینستازی خیلی مورد نیازه ولی سخته، حساسه خطرناکه به قول معروف یکی از این زمین ها چیه؟ یکی از این زمین ها زمین بهداشت و درمان از پزشکی اینجا شما با جان انسان در ارتباطید اینجا دیگه خرید خریده یه کالا نیست یه مسیر رفتن نیست ببینید تو پزشکی همه ما میدونیم دیگه میلیون ها میلیون عامل هست تو جان ما، تو روح ما از میزان قد و وزن و طب و میزان قلوبولای قرمز تا اکس و بایو زد اینها به میلیون ها شکل با هم در ارتباط هستند. و نتیجه میشه میلیون ها نو اوتپود میلیون مل... مل... ها نو مثلا سلامت بیماری. بیماری‌های ما هنوز پیچیده تر نسبت به 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش, پیش, پیش. پس تشخیص بیماری خیلی مشکله. چقدر افراد هستن که ما شنیدیم وقتی میرن پزشک، پزشک میگه اگر یک سال پیش اومده بودی جای امید اگر 6 ماه پیش این آزمایشو داده بودی، کاری میشد کرد. آیا وقتش نرسیده با داشتن این همه اطلاعاتی ما دیگه میگم وزن و قد تو نداری، تو دیگه حرکت و میزان سلول‌ها رو هم دارین. وقتش نرسیده. بتونیم از این اطلاعات ما استفاده کنیم و سیستم درمانو بهینه سازی کنیم حرف حرف جان انسانه هر حرف, حرف بودجه های میلیاردی و میلیونیه آیا وقتش نرسیده ویتینگ لیست ها انتظار طولانی پزشمن متخصص کم بشه بوجه ها هدفمند بشه آیا وقتش نرسیده کسانی که بیماری دارن در خطر بیماری هستن قبل از اینکه خیلی دیر بشه پزشک متخصص متخصص وجود داده بشن و از اون کسانی که نیاز ندارن مجرونه ارشان هی hey, میلیونی میلیونی پول آزمایش بدن و یا دولت سبسیده های هنگفت بذاره آیا وقتش نرسیده؟ این زمینه ای بود که من به صورت خاص توی چار پنج سال اخیر توی زمین تحقیقاتیم روش کار کردم و تمرکز من هم روی به یه جوری دیگه تمرکز من روی کمک کردن به دکترا برای تشخیص اولیه ریسک بیماری بود. یعنی چی؟ یعنی من سعی کردم که بیماری‌ها رو حالا گروه تحقیقاتی نیم داشتیم، بیماری تشخیص بیماری رو از کلینیک‌های تخصصی، از پزشکان تخصصی، از متبه متب پزشکی متخصص بکشم بیرون، بیارم تو سطح هجامه گفتم ما چرا شدیم که سعی که وقتی شما دکتر می‌رید معمولاً وقتیه که معمولاً دیگه خیلی دیر شده، یا خیلی مراحل گذشته. وقتی بیماری شده بیماری، هنوز ریسک نیست. تلاش من این بوده که بیماری ها رو که تشخیص بیماری از سطح بیمارسونا بهشام داخل خانه چجوری با مجهز کردن افراد غیر متخصص مثل من و شما که پزشکی نیستیم به مهارت‌های ت... مهارت‌ها و تخصص‌های پزشکی برای تشخیص ریسک اولیه نمیخوام جای دکتر رو هم بگیریم، نمیخوام جای پزشکان رو هم بگیرید کمک به پزشک که پروسه درمان هدفمند بشه درمان میتونه بعدا پرسونالایز بشه شخصی بشه بهترین درمان برای من و شما باشه چیکار کردم دو تا نکته مهمیج هست اولا تو زمینه پزشکی داده ها خیلی زیاده ها خیلی فراوانه میلیون ها میلیون هاست. فقط همون یه مسیر نیست خیلی سخته با جان انسان در ارتباطی و دوم چون شما با جان انسان دارید کار میکنید اینجا دیگه نمی‌تونیم فقط به ماشین اعتماد کنی اینجا نمیتونی به کامپیوتر اعتماد کنیم. من برم دکتر، پزشک به من بگی که شما این ماشین میگه این داری کامپیوتر میگه این مریضیه، من میگم ماشین بنداز دور. آیدکتور شما چی میگی؟ شما تخصص داری ماشین هیچ هوشمندی نداره. ماشین که سیستم فکری نداره. خب باید کرد؟ می‌خوام افراد غیر متخصص رو به مهارت‌های تخصصی مجهز کنیم. بازون بر این همه داده رو که نمیتونه این همه سوالو پزشک مثلا تو زمینه ما که روانشناسی بود 300 تا 400 تا متغیر هست یعنی 300 400 سوال بر پزشک بپرسه همینا رو که نمیتونه غیر متخصص بپرسه کدوم سوال ها کدوم داده ها کدوم اطلاعات مرتبطه کدوم اطلاعات برای کی مرتبطه شخصی شدن مناسب ترین برای هر فرد همون زایدی بخش اول گفتم خب منم من چیکار میکردم اینجا ماشین میتونه پترن یابی کنه ولی هوشمندی نداره کاری که من کردم این بود همانند سازی هوشمندی انسان خیلی نیست همانند سازی هوشمندی انسان یعنی اومدم سعی کردیم تو گروه تحقیات اون سیستم فکری پزشکارو، رو اون هوشمندی پزشککار رو استخراج کنیم اونو بکنیم بذاریمش توی کامپیوتر و ماشین و بعد در اساس اون هوشمندی بیامتحیل دادن انجام بدهیم ماشین خوشمان نیست، ماشین با خوش نیست. ما این تعادل گستری حالا اینکه چه جوری بود یه زمینه میان رشته ای است. ساینس از ریاضی هست، احتمالات هست، کامپیوتر هست. اومدیم عامل های اساسی در شناخت در شناخت سیستم فکری پزشک رو استخراج کردیم و بعد بر اساس اون یه مدل ماشینلری یه مدل یادگیری ماشینی، یه مدل پترن‌یابی تعریف کردیم. و سیستمی رو درست کردیم. الحمدلله، یک سال پیش انجام شد. که از بین 300-400 تو متغییر رو داده از سی بین 300-400 تو سوال میاد 13-14 تو سوال میپرسی که این سوال بر برای افراد متفاوت متفاوته و بر اساس این اطلاعاتی گرفته که بر اساس سیستم فکری بزشکانه می تشکیس عبلی ریسک رو در سریعی زمان میرد یعنی من میتونم بر کار رو گفتن کار ما کار روانشناسی بود بیمارایی روانی، دیپریشن، خودکشی و غیر و, غیر و غیر. یعنی من میتونم افراد خانواده‌ام که احساس کنه مثلا اینکه افسردگی داره، افسردگی حاد داره، اینو خودم بدونی ای که مجبورشون برم دکتر روانشناس، اینو تشخیص بدم و بعد بعداً دستور نیاز به پزشک متخصص وجود داده بشه. و این سیستم حالا الحمدلله در حال حاضر در حال ارزیابی نهایی توی سیستم پزشکی انگلیس هست و با امید خدا فکر کنم تا یکی دو سال دیگه بشه جزء NHS نشه از سیستم انگلیس و استفاده بشه. نکته مهم این کارینه. همیشه پترن بوده همیشه تجزیه تحلیل داده بوده ولی اینکه ما بتونیم تجزیه تحلیل داده رو بر اساس نوع تفکر انسان نوع تفکر پزشکا انجام بدیم این کاری که به این صورت انجام نشه این خیلی مهمه ما اگر بخوایم زندگی رو بهینه سازی کنیم باید به این دو عامل هوش مصنوعی که همان انسانیت هوش انسانی آتمشال اینتلجنس و علوم داده تجزیه تحلیل داده برسیم این سیستم بعدا کاری که میکنه با سیستم کنینی که تخصصی تو محله یا مطب پزشک در ارتباطه چیزی به نام تی، اینترنت آ اف، فین اینترنت اشیا یا الان ازش شما برده میشه الان میده به سیستم پزشک مطب پزشک متخصص یا تو بیمارستان و وقتی پزشکی نمونه در صورت نیاز یه بیمار وجود کنه برای برسی یا تخصصی هستنی ینی ری تونانی انتظار تونانی ما نخواهیم داشت این یعنی چی یعنی بودجه هدفمند میشه. وقت برای کسایی بزرشه میشه پول برای کسایی بزرشه میشه که واقعا نیاز دارم. اگر ما این بتونیم بهش بالو و پر بریم تو کشور خودمون خوش مسئولی خوش مسئولی هم همیشه ما فکر بریم فقط روبات روبوت هست نه اگر ما بتونیم بدون، به این دعامه خوش مسئولی و علوم داده به پردازیم زندگی ما در همه به این سازی میشه تصفیم دیگره های ما در همه میشه. امید که تو کشور ما سیاستمدارها، مندار ها آنتترپورنا ها ها همه کسایی تو هر زمین هست ممسال فرنگیهنری داروی به این زمینه بپازم تا به زودی کشور ما جزه کشورهای پیشرو در این زمینه باشه اجازه این صوط هم با این جمله تمام کنم که بینش در علم نهفته است بصیرت در علم نهفته است و علم در اطلاعات نهفته است و اطلاعات در داده نهفته است دیتا. و کیل پول پیروزی توانایی تبدیل دیتا و داده به بینش است و سلامکن بر